بسم الله الرحمن الرحيم. حضن حفظنا منقبه الله بالله النبينا العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الله اكبر. صلوا على سيدنا محمد. بلوا احد بيت يتجلى بنا طاهرين الهداه المهديين المنتجبين. سينا بقية الله في السماوات والأرزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كنت معه صلى الله عليه وآله لما اتاه الملأ من قريش فقالوا يا محمد انك قد ادعيت تحزيما لم يدعيه لم يدعيه ابا او من بيتك نحن نسالك امرا لنا انت اجبت تناولنا وعرينا علمنا أنك نبي ورسولون توفي الله خدمته عزيزان برادران رهران بزرگان در گلستان بی بدیل و بی زوال سخنان امیر المؤمنین به گشت و گذار مشغولیم و از خطبه 192 نحجل مناغی امیر المؤمنین حض و بهره بریم به قسمت های پایانی خطبه امام نزدیک شدیم و قسمت هایی مطرح هست که بعد از هران چه گذشت تمام مطالبی که امام پیرامون شیطان حزب شیطان روش شیطان و سنت‌های جاری و در میان انسان‌ها مطرح فرمودند پیامدهایی که متأثر شدن از شیطان در جوامع برای انسان‌ها دارد ساختارهای اجتماعی که ایجاد می‌کند و در نهایت سخن را رساندند به تأثیراتی که جامعه حاضر امیرالمؤمنین و مخاطبان علی در دوران چهار سال و نه ماه خلافت امام هم از شیطان گرفتند. از روز نخستین بسره تا نهرمانی های متحجر و متعصب در اعتقادات باطلشون مهمگاه زادمان و قاستان شامی و بنی امیه و معاویه سفتان و معابیه ش عملی خودشون رو هم امام با این جماعات مطرح کردند و خواندیم و بازگو کردیم و اما امیرالمؤمنین مستندسازی فرمودند که اگر من آنچه میگویم و گفتم این همه ها از شهر بود گرچه از حلقوم عبدالله بود من خودم چیزی نمیگویم آنچه میگویم به برکت تعلیم از محضر استاد بزرگم نبی مکرم اسلام است آنچه دارم از محظر پیامبری است که لحظه لحظه در زندگی از کودکی در محذر رو آموختم و اندوختم و هر روز برای من علم نوی و دانش جدیدی رو میآموزانید و به من منتقل میکرد از افتخارات وجود نازنین امیر المؤمنین آن است که تا لحظه آخر جان دادن پیامبر این ارتباط و این آموزش بین این معلم و شاگرد برقرار همونی که خانده اید و شنیده اید که خارزمی خارزمی اعنفی در مناقب می نویسد بزرگان همه نوشتن که اون لحظات آخر امیر المؤمنین سر و پایین آوردند و گوش رو به دهان نبی مکرم سار و رازها فرمود پیامبر پرین. اینگامی که گذشت سال شد یا ابل حسن پیامبر به شما چه گفتند؟ فرمود علمانی رسول الله الف باب من العلم علم یفتهدی من كل بابن الف باب. هزار درب علم رو پیامبر برای من گشود که از هر در آن هزار درب علم گشوده شد یک میلیون دربر رو در لحظات انتهای عمر پیامبر برای من گشود این ارتباط زیبایی است که بین این معلم و شاگرد منحصرا وجود دارد امیرالمؤمنین اشاره به این فرمودند نکاتی رو گفتیم خدمت دوستان من متشکرم بالاخره سخنان امیر رو من دیروز مثل همیشه گفتیم و هیچ گفته خاص دیگری نیست اما عزیزانی که التفات ویجه بیشتری هم داشتند و حقا همین است که شاید این سنخ مطلبی که دیروز خواندیم در این نام کمتر بازگو شده باشد و شیعان همیر با اون مواجه شده باشند که به علی بگویند علی جان تو میشنوی آنچه آنچرا من می و میبینی آنچه آنچرا من می بینم را ما ارا و تسمع ما اصم ولیکن نکلست به نبی اما تفاوت این است که تو پیانبر نیستی و نه همون ارتباط با غیب رو تو هم داری بلّ. بگوید من نور وحی رو می و شامه من رایحه نبوت رو استشماع می گرد عجیبی که از زبان امیر مستقیمن بازگو می شود بدون هیچ مجامله و بدون هیچ تعارفی آخر این جمله همین بود که فرمودن تو نبی نیستی اما تو وزیری توضیح دادیم از ماده وزر وزر از ماده وزر به معنای فقل سنگینی لا تذر و واضرتون وزراخ هیچ کس نمی تواند بار دیگری رو در قیامت بردارد وزیرون کسی که بارهای سنگین دیگران رو برمی دارد علی تو بارهای سنگین دوش من پیامبر رو برمی دارد از ماده وزر کلالا وزر انا ربک یهو مهون المستقر بنا پناهگاه تکیگاه تو تکیه گاه منی تو تکیه منی علی جان سنت حدیثی رو نقل میکنن که از تبری مورخین و محدثین همه نقل کردن نام این رو میگن حدیث الموازره نوع ما این رو میگیم یومدار حدیث یومدار همون که به انظره اشین علت کله عقرمین وقتی شد که پیامبر دیگه اینجا باید دعوت را هاشکار و علنی کنی پیامبر علی روزدادن فرمودن باید دعوت کنی بزرگان بنی هاشم رو ایش رو دعوت کردند تمسخر کردن, کردن پیامبر بار دوم بار سوم اونجا هنگامی که پیامبر فرمودن چه کسی است در میان شما که بخواهد وزیر من باشد یار من باشد خلیفه‌ی من باشد اینها به شوخی و مزاح مخصوصا ابو لهب مجلسو مشهدهش کردند دو. در هر سنوبت وجود نازنین احمیل المؤمنین با همون سن و که داشتم یا رسول الله به تمام وجودم به ام و امی یا رسول الله و نفسی یا رسول الله اون جمله تاریخی را حتی ابن حدید هم همینجا در شرحی این خطبه بازگو میکنه که وقتی چنین شد آنگاه رسول خدا بازگو فرمودند این جمله رو فهمدن حازا اخی و وسی و خلیفتی فیکم نی یا رس الله اکنون و وزیر که عله همدن یارس من حاضدم همه جور بار رو بکشم و بوددن تو وزیر من خریفه من له من چنین و چنان. خوب این رو همه بزرگان تاریخ نگار اسلام شی و سمی نار کردند تمام شد امام در اینجا در ادامه بحثشان فرمودهند و لت کنتو و لت من با پیامبر بودم. که درود خدا بر او باد لما اعطاهم مدعا من القریش که گروهی از قریش نزد پیامبر آمدند کلمه ملع از ماده ملعان به معنای پریست عزیزان در استناح قران وقال الملأ کفر و من قومه کلمه ملع رو که میشنوید ملکه سبا میگواد ای اهل ملع بحث ملعه افتونی فی امری مشاوره بدید به من نوعا به بزرگانی که چه وجاهتشون چهرشون پولشون قدرتشون دلها و چشم مردم رو پر کرده است هست ملعه میگوید بزمتونید ملعه بگی چه سردمداران بزرگان و سردمداران و مجماعت رو ملعه میده این از گولنش به نزد پیامبر آمدن من همراه رسول خدا بودم من اهلی فقالو لح به پیامبر گفتند یا محمد رسول خدا را صدا زدن به عنوان گفتن انکه قد ادعیت عظیما تو ادعا کردی امر عظیمی را و سنگینی را تو میگی انی رسول الله جمعا من سفیر نمایندهی ویجا و فرستادهی خداوند به سوی شما هستم که ادعا نکرده بوده است این رو هیچ کدام از پدران تو نلا اهدون من بیتک و هیچ هیچیز از خاندان تو بسیار خوب یه ادعای بزرگی کردی حق مسلم ماست که برای این ادعا هست تو چه طلب کنیم؟ دلیل طلب کنیم تمام اقوام وقتی که پیامبری می اومد برای اینها ادعای رسالت می چون این ادعا است دیگه. اگر کسی ادعا کرد، البیانتو علال مدعی، باید بیانه اقامه کنه. مردم ادعایی هیچ کس رو بدون دلیل نمیپذیرن و حقم دارن نپذیرن. بسیار خوب، شما ادعا کردی که ادعای بزرگی کردی که چنین مقام و منصبی رو داری، نهنو نسألو که امرم ما از تو چیزی رو میخواهیم. این انت عجب تنا علیه و این اگر پاسخ ما را دادی و آنچه را که میخواهیم به ما نشان دادی علمنا انکه نبیون و رسولون ما آگاه میشیم و میپذیریم که تو نبی و رسول خدا هستی تو از انبیان الهی پیامبران خدا و رسولان الهی هستی اما و این لم تفعل خود دقت کنیم و این لم تفعل علمنا انکه ساهرون کذابون. اما این خاصه ما رو عملی نکردیم میدونیم تو یه صاحر و جادوگر دروغگو و لحفظن هستیم صاحران کذبا بسیار پیامبر چه پاس دادن؟ امیرالمومنین المومنین ماجرا رو؟ نه ماجرا این که خب این هم از اون بسم دیروزه که شاید خیلی ها به این شیوه این رو واقعا از زندگی پیامبر نشنیده باشن که شاهد صادق همراه امیر تمام گزارشات خودش رو برای ما صادقانه اطرح می تو این خطبه رسول خدا فرمود که و ما تسقلون بفرمایید چیست خواسته شما گفتن که قالو تدعو لنا حاضه شجره گفتن اون درخت رو می بینی؟ بله صدا بزن اون درخت رو به خاطر حرف ما تدعو لنا حاضه شجره حتی تنقل عب اروق و تقف بین یده این درخت رو بخوان و صدا بزن که از ریشه کنده بشه و با تمام وجود بیاید پیش تو این درخت بیستد خب این هم خواسته است دیگه حالا بالاخره, بالاخره گفت خواسته هر کسی فکر هر کس به قدر حمت این جماعت به جای اون که از پیانبر بخواهند که معزلی رو از معزلات مهمه حیات بشری، زندگی انسانی، یک جره ای رو از فکر انسان، زندگی انسان، سعادت و نیکبختی انسان بکشاید، میگن اگر راست مگی مثلا کاری بکن که این لیوان تبدیل بشه مثلا به میز. اگر راست این درخت بگو بیایید مثلا. دیگه این فکر هلکس به این فکر این هاست. جامعه این با این تفکرات اما بسیار خوب اینجا جاییست که پیامبر هم باید چون که با کودک سر و کارت فتاد و زبان کودکی باید گوشد به ازن راهی باید چنین مطلبی را هم به پذیرد قالو تد اولنا هاوه شجر حتی تنقله به مروق ها فدف فبین رسول خدا فقال صلی الله علیه و عاده این الله اللہ صلی اللہ حالا پاسخ پیامبر رو دقت کنید بعد عمل پیامبر رو ببینیم اول قولشون رو ببینیم رسول خدا فرمودن ان الله علا کل شیئن قدیر. ما عددی نیستیم ان الله علا کل شیئن قدیر. شما از من میخواید این کارو بکنم اما پاسخ اینه که من این کار رو نمی کنم خدا می کند این الله علا کل شیئن قدیر. خب این ویژگی پیامبران هست عزیزان رسولان الهی همه کار انجام میدن به ازن خداوند. دیگه چی میخواد شما از این واضح و شفافتر، گاهی بعض از دوستان در این که خواسته ای رو از یه ولی خدا بخواهند به ازن خداوند تردید میکنند. خیلی راحت تر بگم ایرادی نداره بالاخره آقا مشرف شدید خدمت تعمیر نجف. اومدید مشهد و رزا. بعد میگید آقا من این خواستم الان از تحلیب موسی میتونم بخوام یا نه؟ یا نه این اشکال داره این درست نیست بخوام یا نخواهم؟ ببینید شما سراحتا در قرآن خداوند صبحان در حق فرزند مریم چه میگوید؟ ایسا تو توبره دوستان اهل عدب توبره توحیی توبره تمام سیقه مفرد مذکر مخاطب است یعنی تو ایسا تو شفا میدهی بر اسرا درمان میکنی بر اسرا بیماری که قابل علاج نبود و انانم نیست عیسی تو کور مادرزاد را خدا به عیسی میگه عزیزان تو کور مادرزاد را بینا میکنی بالاتر تو تحی الموتا نمیگوید من تو مردر را زنده می کنی اما به دنبال تمام اینها می چی؟ به اذنی به اذنی به اذن من انسان در صفات خداوند از ذات باری تعالی چه می کند؟ خلافت می کند نیابت می کند به اذن خداوند یعنی صفات الهی به دست انسان جاری می شه در وجود من جمله صفت بودن. من جمله صفت شافی بودن این سراحتا خداوند در قرآن بازگو می کند نه یک جا بلکه این ماجره را دو جا در قرآن مطرح میکنه ذات باری به سراحت اما نکته اینه که این اولیاء خدا که به این مرتبه می که خدا نفس اونها سخن اونها را کلام اونها را، دست اونها و خواسته و فعل اونها را در نظام تکمین و وجود به اجرا می کند به میدهند، اینها چنین چیزی رو از خودشون نمیبینن. اینها از ذات باری تعالی میبینن. اینها میگون لا املک الا نفسی و اخیل. چه بکنم من؟ همین کس. ما کنتو بدن من الرسول و ما ادری ما یفعل و بی بلا بکنم. این انا الا نظیر. من یه رسولم، من یه فرستادم. آنچه خداوند در نای وجود من بدمد بازگو میکنم. واقعی که انجام میشه تو ملک سلیمان مهمترین اتفاقات یه شاگرد مکتب سلیمان که فردا میخواهند مسیح سلیمان باشد در اون شرایط زمانی سه هزار سال قبل به چشم به هم زدن طرفه که هنوز ما این امکان رو نداریم هنوز بشر به اینجا نرسیده این کار انجام بده 180 فرسنگ رو به یک ثانیه جا جابجا کردن شی رو از فیزیکی ما این قدرات هنوز نداریم بشر اما میا تخت ملکه سبا مقابل سلیمان میگذاره سلیمان که نگاه میکنه تا تو, تو کارگزارانش تو حکومتش همچین اقتداری وجود داره میگه هازا من فضل ربی ربتی نداره هازا من فضل ربی لا یبلوونی اکفر ام این فضل خداست ابتلاع الهی است برای من که من شاکر باشم یا کافر باشم این نگاه پیامبران اله این بزرگواران هیچ رو از خودشون نمیبینند لذا در محدوده‌ی اینها چیزی به نام غرور چیزی به نام اوج چیزی به نام کبر هم تولید نمیشه چون چیزی از خودشون نمیبینند که بخواهند به اون فخر کنند یا ببینند رسول خدا همونند ان الله کل كل قدیر دیگه جواب معلومه وقتی خدا بر هر چیزی توانست یعنی که شما میگی چیزی نیست اما حرف دارم من با شما لكم زالک اگر خدا چنین کاری رو انجام داد و چنین خواسته شما محقق شد اتو منونه آیا ایمان میادید؟ گفتید از من چنین چیزی میخواید که صداقت من رو بدانید بسیار بود اگر من این کار رو خداوند انجام داد و برای شما نشان دادیم آیا شما ایمان میآورید و تشهدون به آیا تو قلبتون وجودتون ایمان میارید و به زبانتون اقرار میکنید و شهادت میدید یا نه؟ قولو نعم محکم؟ گفتن بله قولو نعم بسیار. پس اینها خواستشون رو مطرح کردن رسول خدا از اینها چه گرفتند؟ اقرار گرفتند شهادت گرفتند که اگر چنین چیزی شد ایمان بیاورند و ثابت و راسخ قالو قال فانی ساریکم ما تطلبون خوب دقت کنید اول یانبر فرمودند فان فعل الله لکم چی ترجمه شد اگر خداوند چنین کاری را بکند ایمان میآورید آیا شهادت میدهید یا نه آن میفهمد فانی ساریکم حالا من این کار رو میکنم و نشانتن میدهم اول فرمود چی خدا الآن فرمود م یعنی من مجری اراده الهی میشم دست من میشه این که فعل خداوند را پیاده کند و نشان دهد توجه کردید چقدر چی زیبا چیدمان سخنرو امیرالمؤمنین دقیق تنظیم میکنه. و لهاعما اما این دهندهاست خلی تکان دهنده است وانی لهاعلما اما در این حال شما میگید ایمان میارید شهادت میدید اما و اینیل اعلمو اما من میدانم که انکم لات هفی اون الاخر. نه شما میل فیع ببینید سایه میاد بالا پهن میشه بعد برمیگرده چی میشه جم میشه بهش میگن فیع به سایه هفیان به همین دلیل انکم لا تفی اونه لا میدونم شما میل و حرکت به سوی خیر نمی میدونم که نمی کنی. اما این کار رو براتون انجام میدم که فردا نگویید ادعا کرد از پس ادعاش بر نیومد و بذارید حالا بالاترش رو بهتون بگم خوب گوش کنید عزیزان و نفی و در میان شما این که خواست از من دارید ای بزرگان ورش کسانی هستند که من یوترهو فلقلیب کسی که افکنده می در چاه من یوترهو فلقلیب و من یحزبال احزاب و کسیست که گروه درست میکند و راه می اندازد را آن چه داره میرون بازگو می کند جاییست که پیامبر کجایند هستند جایی که ملع قرش هستند ملع قریش مکه یعنی خاطر مربوط است به آغاز رسالت نبی مکرم قبل از هجرتشون به مدینه منوره جایی که قریش با اقتدار و سلطه میتونن بیان بگن تو ساحری کزامی توهین به پیامبر هم بکنن پیامبر مدافعی هم نداره به ظاهر تو یه چنین شرایط و زمانی است یعنی زمانی است که هنوز اسلام پا نگرفته هنوز فشارها ها و تهدیدها و تمامش ها و ضربه های مکه وجود داره اما پیامبر لب باز میکنن یا در میان شما کسانی هستند که درون چاه افکنده میشن در میان شما کسانی هستند که حزب درست میکنن اعصاب را میندازن هیچ که اون روز نفهمید پیامبر چی گفت هیچ اون روز نفهمید پیامبر چی گفت تا گذشت سیزده سال مکه به پایان رسید رسول خدا ها هجرت به تیبه تا با ملینت و نبی دارالهجرن امودند اومدن وارد مدینه شدن پیامبر. سال اول گذشت و سال دوم شد شکل گرفت اون ماجرای سنگینی که در تاریخ اسلام میدونید دونید حساس ترین روز بود برای مسلمان ها رویاروی و مواجه شدن یه جماعت تابون دندان مسلح. هزار مرد جنگی با تمام تجهیزات و تصفیحات نظامی از مکه اومدن برو از این طرف این جماعت که اومده بودن بالاخره تاس کنن یه بخشی از کاله هاشون که مصادره کرده بودن مکیان از این کاروان بگیرند دو تا اسب دارن سیچم تا شطور دارن هیچ سلاح دیگه هم ندارن سی و سیزده تا کنار چاهای بعد رو با هم مواجه شدن رسول خدا بیارانشون فرمودن هرچهی شما میگید اگر میگید برگردیم مدینه برمیگردیم این سپاه این این هم مقعیت ما گفتن یا رسول الله اگر بگویی به سوی هر افقی که تو میبینی سر رو بیفت و حرکت کنیم با تمام وجود میریم به هیچ مخالفتی نداریم پیامبر با انصار پیمان نظامی نبسته بود وارد مدینه شده رضا اونها گفتونه هم پاسخشون همین بود خب دیگه رسول خدا تصمیم رو گرفتن اما خیلی جالبه نمیخوام تاریخ بعد براتون بگم بعدی که صبح عارض به هم شد که پیامبر می‌خواستند دیگه روز بهدر رو شد پیامبر در میان همه سپاه آمدند بسط میدان خودون انداختن رو خاک پیشانشون رو خاک گذاشتن سجده کرد اللهم انت هلکها و هل حسابه لم توبت خدا اگر این گروه و این سپاه معدود من کشته بشن امروز دیگه تو به توحیدی که دوست میداری در زمین عبادت نمیشی اینها ها اصحاره توحیدن که میخوان منتشر کنن توحید رو در زمین یه تحنیج معنویی پیانبر ایجاد کردن که میدانید به نصف روز هم جنگ بعد کشیده نشو افتاد کشته دادن تا دروازه های مکه هم گریختن از اون طرف نسانگون ها چارده تا شهید دادند و با حزت و شوکت برگشتند به مدینه جنگ تمام شد حالا تو اینها ملأ ملع قرهشن. خوب دقت کنید اطبه شیبه ولید ابو اینها تو این ملع قریشن که سردمداران و اصل سپاه فرمانده های سپاه مکه بودن اون روز همهشون کشته شده همشون کشته شد. همین سردمداران کشته شد. این ملع بعد از اینکه جنگ تمام شد پیامبر دستور دادن جنازه های اینها رو انداختن تو چاه های خشکیده بادر کردی؟ و ان من يطرحوا ها قليل در میان شما الان کسانی رو میبینم که در چاه هفکنده میشن پیامبر دارن گزارش میدن بدر را رسول خدا دارن ده سال آینده رو مطرح میکنن و من يحزب بعد بدر گذشت به دنبال اون چی رسید نوبتش احد روز پایانی احد ابو سفیان وقتی این بوت حبن رو بالای دست گرفته بودن مکیان فریاد زد بگید اقل و حبن اقل زنده با توبل زنده با توبل به ظاهر مسلمانان جنگ پیروز رو باختن به شکست خوردنده پایان و به خاطر تمهکاری جمعی و سود و خدا جواب بدید الله اعلاو و عجل الله اعلاو و عجل یعنی موشک جواب موشک یعنی پاسخ شعار رو با چی بدید؟ با شعار بدید به اصطلاح امروز اینا جنگ نرم میکنن شما فاسوبش همون طور بدید اینها چنین میگویند شما هم جوابشون بدید اونا گفتن نحن لنال اززا و لا اززا لکم ما با تو داریم شما با تو نداری ندارید پیام جواب بدید الله مولانا و لا مولانکم الله مولانا و لا ابو صوفیان گفت محمد اون یک روز این یک روز یومن به یومن اون بدر این او یه روز بردی یه روز باختی و موعدنا یوم و بعد بعده ما نبرد سوم خب نبردی شکل گرفت که تو نبرد میدانید این جمله تاریخی رو پیامبر فرمودند الیوم برزل بر ال کفر ایمان و الی الکفر کله امروز روی روز صفارویی و رویارومی کامل کفر و ایمان است یعنی جنگ احزاب هزار نیرو اومدن محاصره کردن کامل مدینه رو اتفاقیست و اتحاطیست بین مشرکان بین یهودی و بین قبائل خشن تند تمام جزیلت و برای برچیدن اسلام این شد جنگ احزاب، گروه های مختلف با هم اتحاط کردن احزاب را تشکیل دادند. دادن دا من دامن یهدز بل احزاب در بین شما کسانیست که علیه ما احزاب را شکل خواهد داد و نبود کسی مگر ابو صفیان و پیامبر دارن گزارش آینده را میدن من همینجا باز این جمله رو بگم خدمت دوستم یعنی پیامبر دارن چی میگن از این الان دارن علم غیب میگن یعنی دارن از آهنده خبر میدندن دارن وقایع آینده رو امروز میگن رسول خدا باز به همین منطقی که عرض کردم یعنی پیامبر علم غیب برای خودشون قائل نیستن مگر آنچرا که خداوند به ایشان تعلیم امیرالمومنین از پیامبر سال میکنه تو نهج البلاغه میگه یا رسول الله شما میگید سیفتن و امتی امت من فتنه میشن چنین میشن چنین میشن داراینده آیا اینها علم غیبی که شما میگویید پیامبر پاسخ میدهن علی جان اینها تعلم از ذی به الغیب است اینها آموختن از صاحب غیب است که خداوند است یعنی من خودم ذاتن قیب نمیدانم، اما به تعظیم خدا می دونم من میخوام بگم این خیلی جره مهمیه اینو خوب دقت کنیم بگید و عنده الملغیب لا يعلمها الا هو هیچ کلمه‌ای قیب ندارد جز خدا حوال سلام هر بنده‌ای رو بسات باروت الهی میرید سوره مبارکه الجن بگید ونده ملغیب فالو رو هرعلا و غیب الا من ارتضا من نسو خدا آلم القیب است از این قیرش به هیچ کس نمیدهد مگر آن رسولانی را که میپسندد اگر خدا یه رسول رو بخواد بپسندد اون کیه؟ بیانبر اسلام خب پس بیانبر اسلام حالا با این دعایه کنار هم بگذاریم علم قیب دارد یا ندارد؟ او دارد. اما چرا اونجا نحفی میکنه اینجا اثبات میکنه؟ علم قیب ذاتی از پیامبر به هر انسانی سلب میشه علم غیب عرضی به تعلیم خداوند برای پیامبر یا دیگران اثبات میشه این که بزریف باریکه چون گاهی بلاخره تو این چانتاش ها و تبلیغ ها و این حرف ها شما این تختق زدن این طرف اون طرف این شبکای چیزایی میشنرید توجه داری. پس بنابراین پیامبر رسول خدا قطعا قید میدانند اما قیبشون ذاتی نیست به تعلیم خداوند است. به مقدار است که ذات باری تا آنا به ایشان قیب میاند الان هم فرمودند فرمودند و این نمی من یتره من یترهو در میان شما کسانی که تو چاه می افتن و من یه هزه احزاب احزاب تشکیل می دن سم مقال حالا دقت کنید. اول پیامبر از این فرصت استفاده کردن این حرفا رو گفتم بعد این کار پیامبران خوب دقت کنید تو آموزش و تربیت و هدایت این خیلی مهمه معلم زیرک پدر و مادر زرنگ مربی با کیاست کسیه که وقتی یه فرصت دستش میده از اون فرصت کوتاهترین و عالیترین استفاده رو میکند آمدن گفتن جناب یوسف ما میبینیم انا نراک من المحسنین تو خیلی آدم بزرگی هستی آدم خوبی هستی ما اینطور خواب دیدیم من این گونه خواب دیدم من اون گونه خواب دیدم من دیدم که بر سرم چه گذاردم اون دیگری گفت من دیدم که دارم انگور میفشارم گفتن بیان تا بهتون بگم تعبیر خوابتون اما زود نگفت این تعبیر خوابتون این تعبیر خواب و سلام و رحمته الله گفت بیا تشبیهین آره اینا اومدن خودشون مایلن دیگه صداشون نزده یوسف اینا خودشون اومدن طرف یوسف وقتی اومدن خودشون نباید این رو از دست فرصت رو گفت یا صاحب السجد ارباب متفرقون خیرن ام الله الواحد القهار آیا ارباب متفرق خیرند یا خدای باهد قهار یک گوشه های توحیدی گفت بعد شروع کرد خواب اینها رو بهشون تعبیر کردن یعنی تیر رو زد از اون فرصت استفاده کرد بهینه بعد خواسته اینها رو داد این از شیلی کار پیانبران است رسول و خدا این نکته ها رو گفتن گفتن بسیار خون قالوا خوب دقت کنید ثم قال سپس فرمود صلی الله علیه و آله لا ثم قال یا ایته الشجره یعنی چی ای درخت یا انیتها الشجره ان كنت تا بالله نبرد لاه، ولی درخت اگر تو ایمان به خدا و قیامت داری و تعلمین انی رسول الله و می دونی تو من رسول خدا هستم، فن به ارواد که حتی تغییب این یادگیری از الله اگر ای درخت تو ایمان به خدا داری و قیامت و به نبوت و رسالت من از جان خودت کنده بشو بیا مقابل من بیست شنیده بودی همچین چیزی؟ یعنی با این قیودی که پیامبران بردانن می فرماید. ای درخت اگر تو ایمان به خدا داری اگر تو ایمان به رسالت و نبوت من داری ایمان به قیامت داری مگه میشه با درخت صحبت کرد؟ بله. بیان ولی صحبت میکنه. مگر درختن چیزا رو میفهمه؟ بله میفهمد. عجیب واقعا خیلی عجیبه. علام تران <تصفح> الله و صدق الله من في السماوات ولا اعرض من طير كل قد حدثنا صلوته وتسبيها. آیا نمیبینید تعمل نمی کنید که اون چه در آسمان و زمین است تسبیح خدا می کنند پرندگان تسبیح خدا می کنند چه و چه بعد گوش کنید کلون یعنی تمام اون چه در آسمان و زمین است قد علم قطعا میداند داند او و تسبیحه تواضع در پیشگاه خدا را صلات در لغت معنای اون یعنی چی؟ یعنی خضوع در پارسی ترجمه سلات میشه نماز نماز کردن در عدب پارسی نخستین به معنای خضوع کامل و تواضع کامل نشان دادن کلن قد علم سلاته این موجودات علم دارند به خضوع و توازوع در پیشگاه خدا و تسبیح خدا را علم دارن کلن قد علم چه فعلی رو بکن میبره خداوند؟ سوره مبارکی نور آیه چهر و سبوم. قلون قد علم سلاته و علم دارند ها به سلات و تسبیح خدا. و امن شیء الا یسببه و بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم هم، تمام این موجودات تسبیحشون است. اما شما فقه نمی کنید و فهم نمی کنید. اگر گوشورده شد دریچه های جان به این اذن و رخصت ارتباط را با وجود داد آنگاه فهم می‌کنید و می‌فهمید. آنگاه اونگاه متوجه میشید که نطق آب و نطخ خاک و نطخ گل هست محسوس حوال اهل دل پیانبر داره با درخت صحبت می کند ایتا هشت به الله به رخصت احلاحی و اون شعور مرموز و اون شعور پنهان این درخت رو کشد میکشه نمیخوام وارد این بحث بشه یکی دوتا آدرس کوتاه خدمت دوستان عزیز میدم ببینید خداوند گزارشی رو نحل میکنه در قرآن سلیمان داره از وادی رد میشه بعد یک مرتبه قرآن میگوید آلت یا غیهان و آلت نملتون یا غیهان نملت خلو مساکنکون او یع تمننکم سلیمان و جنودو مورچگان وارد منازرتون بشید سلیمان و جنودش شما رو له میکنند انهم لا یشعرون اینو اون شعور کافی رو ندارن که شما رو له نکنند زیر پاشون میرید لهتون میکنند اینو کی داره میگه تو قرآن یه مورچه این مورچه سلیمان را میشناسد، سپاه سلیمان را میشناسد، مشکلات سلیمان را میشناسد، میداند می, می این این توجهات را ندارن. چیه این شوخی خدا در قرآن میگه؟ یا جدیه؟ توجه داری؟ هست این نشستی داشتم با یکی از عزیزانی کتفان از شهر و دیار شما هم از صاحبان و کرسی های خوبه می فول پرفسور های کشورمون در بعض از رشنام ایشان کامدن به تحقیق کامل در تمام جهان تاکنون در تمام کلینیک های حیوانی ثابت نشده است که دو ته دو حیوان با هم تصادف کرده باشند و ببینند ببینن از تصادف اما هرچهیخواد برید میگیرید آمار را کشته های ما در یه سال 20 هزار کشته در سبانه جاده ایمون تا کنون دو تا گربه با هم تصادف نکردن صد ببینن انسان ها با هم تصادف میکنن این چه که اینها دارن؟ تون تو ترافیک هوایی که میبینید گاهی ای برج مراقبت بلاخره اگر یک هزارم اون ترافیک براش بیاد خودش کار ساخته هست اما میبینید این پروازهای هوایی یک ست هزار ست هزار قطعه پرنده از این قطب حرکت میکنن هیچده هزار کلومتر تی می مهاجرت میکنند یک تصادف هوایی ندارن. یک سانه گزارش نمی در خبرگزاری ها کی اصحانهی داشته باشه این مورچگان رو می‌بینید چج 10000 مورچه میاد در حرکت میکنن هیچ با هم تصادفی نمی کردن صدمه نمیبینه کسی چطور اینها شعوری دارن که مسیرشون جهتشون رو بیابن پناه به خدا میبریم یه وقتی که اون آقای بلژیکی بالاخره موریس متوینگ مورچگانش نوشته بود و از امبورر رو نوشته بود هنوز اون دو تا کتاب زیبانه هنوز زیباست. اکاون خودشون میکنه و او ها رب کل النحل ان اتخذی من الجبال بيوتا و مما يخرجون اونایی که مطالعه کردن رو رفتار مورچگان با ملکه اصلا تمام دیسیپلین برخورد با یه حاکمیت رو از جهت پالیتیک و سیاست و سیاسی میتونن ببینن و مشاهده کنن چطور خداوند به این آموزش داده است حالا یه حد حد رو خدا اونجا مطرح می کند. مالی لاحرال حد حد. همون یه حد, حد بود که میتونست بر ملکی سبا رو ببینه خورشیدپرستی پرستی اونها رو تشخیص بده از توحید و انحراف اونها رو بفهمه یا دیگران میفهمن ما کجاییم در این بهره تفکر؟ تو کجا؟ قصه خیلی غریبتر از این هاست عزیزان. حرکت می کردیم؟ گفت در محضر وجود انها حضرت سید و ساجدین دیدیم همونطور که داریم حرکت میکنیم یه گنجش که هی میاد جلو هی بال میزنه زفیر میزنه هی بال میزنه زفیر میزنه حضرت اصلادن رو کردم به من حامدن برو فلانی در فلان جا یه لانه گنجش کست یه ماری داره وارد این لانه میشه برو اون مار رو بکش بیروه به وارد بشه این فرزندان گنجش این گنجش داخل اون هست رفتم دیدم مار رو کشیدم اومده. دیدم گنجش مقابل وجود اون که امام سجاد اومد دوره دو داره حضرت به خدا حضرت به ما پناه آورد به ما پناه آمرد. پس دارن این شور رو این مجموعه ما گمان میکنیم که خیلی میفهمیم و خیلی شور داریم و دیگران ندارند تو این مجموعه به توی این وجود چی میشه اگر انسان دست پیدا کنه به این رازهایی که یا ایوهن ناس انا قلمنا منطقه تیر منطقه رو بدانن یا ایتوه شجره ای درخت این کنت تؤمنین بالله و اليوم الاخره و رسول الله فنقلعی به اروغ جهت تا تقفی بین الله بیا مقابل من بیست به ازن خداوند حالا گوش کنی امیر المؤمنين می کامد الذي بعصهو بالحق امیر المؤمنین اهل قسم خوردن نیست مگر جایی باشه که دیگه باید سوگند یاد کند به اون خدا اون که پیامبر رو به حق مبعوض کرد لنقلعت به اروقه ها بعد از گفتن پیامبر این درخت با ریشه هاش قمع قمع اره رو میذاری درخت از رو میبرید قمع با ریشهاش میتشید میشه قلع لنقلعت به اروقه ها این درخت با ریشهاش از زمین در و به جاعت و آمد و آمد ها دویون شدیدون و درخت همینطور که میاد استراب داشت صدا داشت به صدای نامفهوم میگن دوی دویون شدیدون و قصف که قصف اجنحت تیر صدای بال زدن پرندگان رو من شنیدم از این درخت که مانند بالزدن بال زدن پرنده این درخت برگهای او صدا داشت و نزدیک پیامبر آمد حتی وقفت بین بینید رسول الله صلی الله علیه و آله محمد اللہ علیه و آله مرفرفتن با همون صدا و با همون وضعیت اومد پیش رسول خدا این درخت ایستاد بزن الله و علقت به قصن حل رسول الله و به بعض اقصانها علا منکبی و کنتو ان یمینهی صلی اللہ عنوان آمد درخت ایستاد بعض از های اون افتاد و وجود نازلین پیامبر سایه افکند بر پیامبر بعض از بر شانه من یعنی لمس کردیم این رو تصور و تخیل نبود چشم بندی نبود چشم بندی نبود و القد هاش رو حیز کردیم و لمز کردن دیگران و کن تو یمینه، و منم راست پیامبر دست راست پیامبر بودم فاصله نداشتم که منم در چشمم بیاید عجیم عجیل و ترجی نبود این مناخره فلام ما نظر القوم و الازالک خیلی خوب اینها گفتند آقا بگو این درخت بیاد بیامر درخت رو آوردند. فلام ما نظر القوم و الازالک اما هنگامی که این جماعت قوم نگاه کردند و دیدند خوب دقت کنید قالو ولو و استکبارن فَمُرْهَا فَلِيَعْتَكَ نِسْفَهَا وَيَبْقَا نِسْفَهَا اللّه ها اکبر یه جمعه امیر مومین فهمان اینجا خیلی ببینید من خواهش میکنم دوستانی که مطرون رو دارن نگاه کنید قالو فعل و فائل یعنی همین بزرگان غرش گفتند درست چی گفتند؟ الان بعد از قالو باید جمله مقول قبول اینها بیاد گفته اینها بیاد اون و وستکبارن رو بذارید کنار، حذفش کنید فمرها فلیعت کنصفها قالو فمرها فلیعت کنصفها گفتن امر کن به این درخت که نصفش بیاد جلوتر نصفش برگرد سر جش اما حالا میخوام بگم که قالو بین قالو و اونچه گفتن دو کلمه امیر میفرمایند به این میگن هشبه هشینواو هشو هشو یعنی چی؟ یعنی عرض به خدمتون آن سفر کرده که صدقا فل دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش شما میگید آن سفر کرده هر کجا هست خدایا به سلامت دارش جمله این بود اما بعد داخلش یه جمله این چیزی گفته میشه که میشه گفته نشه اما وقتی گفته میشه خیلی زیبا میکنه سخن رو آن سفر کرده هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش اما گفتید آن سفر کرده که صد فل دل همره اوست هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش اینو میگن صنعت زیبای هشبه ملیه در عدبیان که میشه یه چیزی تو جمله نباشه وقتی برمیداری می، بر تغییل نمیکنه اما وقتی میزارید چقدر زیبا میشه و چقدر مفهوم اضافه میکنه چه خوش گفت فلدوسی پاک ساد که رحمت آن تربت پاک باد می موری که دانه کشاست که جان دارد و جا شیرین خوش است. ببینید چه خوش گفت فردوسی پاکزاد من 11زار که دانشکش هست که جان دارد و جان شیرین خوش است. این جمله ای که سعدی داره نقل میکنه از فردوسی اما بینشی گفت که رحمت بر آن تربت پاک باد این میشه هشف ملی این زیباست حال ببینید چنا و مییرونمین رو با این توضیح هیوانه ای کردم. امام فحمات قالو گفتن این کارو بکن اما بینش میفرمايد قالو اولو ون یعنی ریشه بدبختی های اینها رو به تعبیر امروزی ما آسیب شناسی این جماعت را المؤمنین رو می کند اینها گفتن چرا اینها این حرفا رو گفتن به پیامبر و بعد گفتن نصفش بیاد نصفش بره که توضیح خواهم داد اولو ون به دلیل اینکه اینها چی بودن؟ زیاد خواهی میخواستن به دلیل اینکه اینها میخواستند استکبار خودشون رو ثابت کنن نمیخواستند به برتری بر کسی را رسول خدا را ولایت رسول خدا را حاکمیت رسول خدا را نسبت به خودشون دست و پا میزدن که یه جوری جیره به پیانبر بدن یه جوری پیانبر رو به زیر میکشن پس بنابراین اینها دنبال حق و اثبات نبوت و جستجو کردن و پژوهش کردن و فهمیدن حقیقت نبودن بلکه مشکل اینها و گیری اینها این بود چیز دیگری بود حالا ان شاء الله بود بگم تلک لآخره فقط همین جمله را عرض کنم تلک لآخره عجیب این آیه عجیب این خداوند رحمت کنند در شهر ما بزرگی بودن که خیلیاتون اسمشون روشنید مرحوم آیت الله از جوادای تهرانی استاد پدر من بودن هفت سال برم پدر در خدمت ایشان در خارج دیده بودم. فخصصون دو. برطله میشه آدا تو رانی انسان عجیبی بود. اب نداره گاهی نام این بزرگان هم همواقع خاطرم هست بارها زنگ زدن تلفن منزل من کودک بود. گوشی رو بر میاشتم گفتملو گفتن ال سلام و علم رحمت الله ما هم با بچه بام کم و می من جوادم آقا هستن؟ من جوادم آقا هستم. حالا کسی که چاگردانش کسی که به داخره خیلیاتون میشه در جایگاه بالایی بود از جهت معرفت و اخلاق و علم و شخصیت اجتماعی سیاسی خاطرات ایشان در انقلاب در خراسان ها محور بودند و شخصیت خاصی بودن اصلا. گفتن من جمادم. مقاییت بودن همیشه در تعلیفات کتاب و مقالاتشون جواد تهرانی هیچی دیگه نوشته نیمی پای اسمشون نه قبلش نه بعدش جواد تهرانی آقا اینها خیلی نقش عزیزان و خیلی سهم به سزایی دارند به در شکل گرفتن. شخصیت انسان‌ها و انسانسازیشون و وجودشون و جایگاهشون دعا کنیم و همهشون حالا که اسمشون متداول یا ارواح طیبه همه عالمان زکیان شهیدان امام شهیدان حقداران، از اساتیدمون والدین جمع حاضر و گذشتگان جمع حاضر و بر سفره و خانه گسترده امیرالمؤمنین میهمان بگردان حالا خواستم جملهای رو بگم که ای زیفت این رو هم فردا چون طولانی تر میشه خدمت دوستان تکمیلش کنم با ادامه بعد الله به حلق و به الهی محضرتون بازگو کنن. متشکرم و سلام علیکم و رحمتون